خرچنگ و مرغ ماهیخار. روزی بود و روزگاری بود. یک مرغ ماهی خار بود که لبه دریاچهی زندگی می کرد و، از همه کارهای دنیا به این دلش خوش بود که هر روز یک ماهی بگیرد و بخورد و شب همانجا بخوابد مدت ها این کارش بود تا پیر و ضعیف و رنجور شد و یک روز دید که دیگر نمیتواند مثل گذشته لب آب کمین کند و با تردستی و چاوکی ماهی ها را بگیرد چون ماهی ها پیش از اینکه او به خودش به جنبت فرار میکردند و او گرسنه میماند آن وقت از خستگی در گوشهی می نشست و با خودش فکر می کرد افسوس. افسوس که عمر عزیز را به بازیچه برباد دادم و در جوانی چیزی برای روزگار پیری ذخیره نکردم و حالا قدرت و توانایی ندارم که حتی یک ماهی هم بگیرم. تا اینکه یک روز فکری کرد و با خودش گفت حالا گذشته ها گذشته و چون بی خوراک نمیتوان زندگی کرد باید راه آسانتری پیدا کنم در دنیا را که نبسته اند بعد رفت در کنار دریاچه آنجا که نزدیک منزل خرچنگ بود گرفت نشست قیافه ماتم زده ای هم به خودش گرفت و بنا کرد با خود حرف زدن خدایا این چه بلایی بود که نازل شد؟ من که پیر شدهام و چیزی از عمرم باقی نمانده اما این ماهی ها چه گناهی دارند و چرا باید گرفتار دست ظالم بشوند؟ عجب روز و روز گاری شده که هیچ کس به هیچکس رحم نمی کند؟ خرچنگ که با ماهی خار آشنا بود و بسیار با هم نشسته و درد و دل کرده بودند وقتی صدای او را شنید از آب بیرون آمد نزدیک ماهی خار رفت و گفت: دوست عزیز انشالله بلا دور است میبینم که خیلی پریشان و قمگینی مگر چه اتفاق بدی افتاده؟ ماهیخار جواب داد ای برادر چگونه غمگین نباشم تو میدانی که سرمایه زندگی من این بود که هر روز از این آبگیر یک ماهی میگرفتم و من به همین شکار ناچیز قناعت میکردم و راضی بودم اما امروز دو سیاد را دیدم که با تورهای بزرگ ماهیگیری از اینجا میگذشتند و نگاهی به این آبگیر انداختند و یکی از ایشان به دیگری گفت حالا در فلان دریاچه ماهی بیشتر است اول کار آنجا را میسازیم و بعد میاییم اینجا و دو روز کلاک اینها را هم میکنیم، این است که من میبینم علاوه بر اینکه من در اینجا بیروزی میمانم همه این ماهی ها هم در ظرف دو سه روز سید میشوند و یک بار از میان میروند خب دلم به حال اینها هم میسوزد خرچنگ این خبر را به ماهی ها گفت آنها هم از این خبر خیلی ترسیدند و جوش و خروش در میانشون افتاد و همه دور خرشان جمع شدند و گفتند بله مرغ ماهیخوار راست میگوید اگرچه او هم دشمن ما بود اما او فقط روزی یک ماهی میگرفت و از جمع ما چیزی کم نمیشد ولی اگر سیاد بیاید ناگهان همه را میگیرد و چون ما نمیدانیم چه ای باید کرد بهتر این است که از ماهی خار بپرسیم شاید او راه فراری بلد باشد خرچنگ گفت اگرچه با دشمن مشورت نباید کرد ولی مرغ ماهی خار در خوشگی زندگی کرده شاید عقلش زیادتر باشد پس ماهی ها همه همراه خرچنگ آمدند کنار ساحل و از ماهی خار پرسیدند خبری که خرچنگ از قول تو گفته راست است؟ ماهی خار گفت بله من شکارچی ها را با چشم خود دیدم و حرف آنها را با گوش خود شنیدم و این بود که هم برای خودم و هم برای شما... خیلی غمگین شدم ماهی گفتند، ای مرغ دانا ما میدانیم که وقتی بلای سخت و دشمنی بزرگ پیش می آید دشمنی های کوچک را باید فراموش کرد همیشه زندگی تو به وجود ما وابسته بوده و حالا زندگی ما هم به عقل و هوش تو وابسته است حالا در کار ما چه راه نجاتی به عقلت می رسد؟ ماهی خار جواب داد من خود از زبان ماهیگیران شنیدم که گفتند بعد از تمام شدن کار آن دریاچه به اینجا خواهند آمد. و چون نه من نه شما هیچ یک زورمان به آنها نمیرسد به عقیده من هیچ راه دیگری وجود ندارد جز اینکه همه از این دریاچه به دریاچه دیگری که در پشت این کوه است فرار کنیم. من آن دریاچه را دیدم به قدری بزرگ است که هیچ ماهیگیری نمیتواند در ته آن قدم بگذارد و با وجود این آبش به قدری صاف و زلال است که تخم ماهی و دانه ریگ را در ته آن می تواندید همه به آنجا بروید همیشه راحت هستید زیرا پای هیچ آدمی زاده ای به آنجا نرسیده و از چشم دشمن پنهان است ماهی ها گفتند فکر بسیار خوبی است اما دریاچه ما راهی به آنجا ندارد و ما در خشکی نمیتوانیم راه برویم و این کار بی کمک تو امکان پذیر نیست تو که یک عمر از ماهی ها خوراک کردی ای بیا و این همراهی را در حق ما بکن و ما را به آنجا برسان تا خدا هم از گناههات درگذرد و ما هم از تو راضی باشیم مرگ ماهی خار جواب داد. من کوتاهی نمیکنم اما وقت کم است و سیادان ممکن است تا چند روز دیگر اینجا برسند و من هر بار بیش از دو سه ماهی نمیتوانم ببرم ماهیها باز التماس کردند و قرار بر این شد که هر روز دوبار مرغ ماهیخوار چند ماهی را به دریاچه جدید ببرد پس ظرفی از پوست هندوانه آوردند و نخی از علف دریا به آن بستند و هر روز صبح و عصر چند ماهی در آن می و ماهی خار نخ را به نیش میگرفت و پرواز کنان آنها را میبرد. میبرد بالای تپی که در آن نزدیکی بود و آنها را میخورد و استخوان را همانجا میریخت و با ظرف خالی بر می گشت. ماهی ها هم که، از حقیقت حال خبر نداشتند و فریب او را خورده بودند هر بار هر یک پیش دستی می که اول مرا ببر اول مرا ببر تا چند روز ماهیخار با این بدجنسی شکم خود را از گوشت ماهیها سیر می و در دل خود آنها را مسخره می و میگفت <تصفيق> پیران قدیم راست گفتند که تا احمق در جهان هست تنبل بیروزی نمی <تصفيق> بعد از چند روز خرچنگ به ماهیخار گفت من می‌خواهم دریاچه جدید را تماشا کنم و خبر خوشحالی و سلامتی ماهیها را برای دوستان بیاورم خوب است امروز مرا ببری ماهیخار وقتی این حرف را شنید با خود گفت حالا که این خرچنگ برای سلامت ماهی ها نگران شده ممکن است ماهی ها را هم به شک و تردید بیاندازد پس بهتر است این را هم دنبال دوستانش بفرستم این بود که دیگر نگذاشت خرچنگ در آب برود و پیشنهاد کرد که چه از این بهتر زود باش همین الان بیا پشت من سوار شو تا در یک ساعت برویم و برگردیم هم دریا چرا تماشا میکنی هم ماهی ها را میبینی و هم پروازی میکنیم و خلاصه هم فال است و هم تماشا بعد خرچنگ را بر پشت خود سوار کرد و پرواز کران راه بیابان را پیش گرفت اما خرچنگ باهوش همین که استخانهای ماهی را روی تپه دید فهمید که اوضاع از چه قرار است و دانست که ماهیخوار مکار هیله به کار برده و ماهیها را نابود کرده و حالا جان خود خرچنگ هم در خطر است این بود که با خود گفت بهتر است حالا که دستم میرسد با او بجنگم و انتقام ماهی ها را از او بگیرم اگر موفق شدم او را حلاک کنم که جان خودم و بقیه ماهی ها را خریدم اگرم زورم نرسید دستکم مرگ من مرگ با افتخار است و مردم نمیگویند که خرچنگ هم چنگش را فراموش کرد و خر شد بعد از این فکر تصمیم خودش را گرفت و همچنان که بر پشت ماهیخار سوار بود ناگهان خود را به گردن ماهیخار انداخت و با چنگ های خود حلق او را محکم فشار داد. مرغ ماهیخار بیهوش شد و هر دو با هم به زمین افتادند. وقتی خرچنگ مطمئن شد ماهیخار دیگر جان ندارد گردنش را رها کرد و به عجله خود را به ماهیها رساند. و خبر هیله ماهیخار را به آنها داد و گفت ماهیخار شنیده بود که بعضی وقت ها مکر و هیله بیش از زور بازو برای پیشرفت کار اثر دارد اما نفهمیده بود که همیشه خیانت با دوستان و قصد جان بیگناهان به قیمت جان هیلگر تمام می شود بعد ماهی ها بعضی از دوستان خود را تسلیت گفتند و بازماندگان از فداکاری خرچنگ تشکر کردند آنها خوشحال بودند که مرغ ماهیخار هم به سزای خیانتش رسیده و با خود عهد کردند که دیگر هیچ وقت خبری را که از جانب دشمن میرسد باور نکنند و از دشمن خود توقع خیرندیشی نداشته باشند